خوش راغز سلامت و حلت به زی سلام لله حمد و معترفن غایتا نعم آن خوش خبر کجاست که این فث مجدد داد تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم از بازگشت شاه در این ترف منزل است آهنگ خسم او به سرا پردهی عدم پیمان شکن هرای نگردد شکست حال ان اهود اند ملیک نخازمم می جوست از صحاب عمل رحمتی ولی جز دیده اش ماین بیرون نداد نم در نیل غم فتاد سپهرش به تنز گفت الان قد ندم تب ماین فا ندم ساقی چو یار محروف از احل راز بود حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم